افسان به نام خدای یگانی مهربان، سلام این بار هم با کول باری از افسانه‌های زیبا و شنیدنی از جای جای این کره خاکی به سراغ شما همراهان فرهنگ دوست آمدیم امیدواریم ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید افسانه‌ها و قصه های آمیانه بی تاریخ و بی زمانند. عشق و علاقه به قصه گویی و افسانه پردازی و شنیدن قصه در تمام طول تاریخ تمدن با آدمی همراه بودند و در این میان ایران زمین پهناور گنجینه‌ای غنی از افسانه‌ها و قصه های زیبا و شنیدنی را در جای جای خودش نفته داره که بسیار ارزشمنده. و ما افسانه رو از مردم ترکمن صحرا براتون نقل می کنم به نام افسانی کمک آقا و دیو برگرفته از کتاب 90 افسانه به گردآوری و بازنویسی عبدالصالح پاک روزی روزگاری در سرزمین ترکمن صحرا در نزدیکی جنگلی پیرمرد مرد هیزم شکنی زندگی میکرد. پیر مرد قلب مهربونی داشت و به همه کمک میکرد و به همین خاطر هم اسمش رو گذاشته بودن کمک آقا. پیرمرد مرد ما لاغر و بلندبالا بود با موهای سفیدی که همیشه روی پیشونیش میریخت. اون یه روز سرد زمستون تبر و تنابی رو برداشت و برای جمع کردن هیزم به جنگل رفت اون روز هم مثل روزهای دیگه نور آفتاب از لا بلای شاخه های اوریان درختان پشت کمک آقا رو گرمی کرد. کمک آقا همینطور که داشت جلو می رفت یه دفعه صدایی شنید. به این طرف و اون طرف نگاهی انداخت ولی چیزی ندید. کمک آقای افثانه ما فکر کرد شاید خیال کرده که صدایی شنیده و به قول معروف خیالاتی شده. اما چند قدم دیگه که جلوتر رفت باز همون صدا رو شنید و کمک آقا گوشاشو تیز کرد و متوجه شد که صدا از داخل یه صندوق چوبی که پای درخت افتاده. آروم و با احتیاط به طرف صندوق رفت و گفت چی هستی جنی یا پری آدمیزادی صدایی از داخل صندوق جواب داد من نه جنم نه پری آدمیزاد هم نیستم کمک آقا با تعجب گفت پناه بر خدا پناه بر خدا پس چی هستی کسی که داخل صندوق بود گفت تو تو فقط منو توی این صندوق بیرون بیار، قول میدم به هر پرسشی داشتی، جواب میدم خواهش میکنم، خواهش میکنم، من نجات بده از این صندوق، خواهش میکنم، خواهش میکنم کمک آقا دلش به رحم اومد و در صندوق رو باز کرد و در یه چشم هم زدن دیوی سیاه و بد از داخل صندوق بیرون پرید و نفس راه و باز شدن در صندوق و بیرون اومدن دیو سیاه و بد ترکیب کمک آقا با وحشت خواست فرار کنه که دیو فریاد زد کجا <مک> با این عجله؟ پیرمرد کمک آقا با ترس جواب داد من, من باید برم خونه خیلی دیرم شده من باید برم خونه دیو خنده ای کرد و گفت <مجد> من حالا حالاها با تو کار دارم پیر مرد کمک آقا در حالی که رنگ از رخسارش پریده بود گفت با من چی کار داری من که تو را از توی اون صندوق نجات دادم و تو آزادی هر جا که خواستی بری اجازه بده منم به خونم برگردم دیو سیاه دستی به شکمش کشید و گفت آه تو منو نجات دادی ولی گشنمه ولی برام غذایی آماده نکردی پیرمرد گفت غذا این دور بر غذایی که بتونه تو رو سیر کنه پیدا نمیشه دیو با عصبانیت گفت حرف بیهوده نزن پیرمرد اگه غذایی نیست رود باش آماده شو تا خودتو بخورم کمک آقا حاج و که چیکار کنه و چی بگه؟ بالاخره گفت واقعا میخوای منو بخور من که یه مشت استخون بیشتر نیستم تازه چطور دلت میاد منو بخوری آخه من در حق تو خوبی کردم اگه من نبودم هیچ معلوم نبود تا کی توی اون صندوق حبس بودی نه نه نه نه این درست نیست کسیی که تو رو نجات داده تو اونو بخوری دیو سیاه گفت <تصفيق> من این چیزا سرم نمیشه گرستگی امونم رو بریده بهتر هیچی نگی و خودت برای یه من آماده کنی کمک <مع> م... آقا که تازه داشت به خودش مسلط میشد گفت باش باشه باش باش من دیگه حرفی ندارم ولی ولی دیو سیاه با عصبانیت گفت ولی بی ولی یه جلوتر یه جلوتر که درم از گراسنگی کمک آقا گفت باشه من حرفی ندارم بیا بیا منو بخور ولی بهتره از چند نفر بپرسیم که آیا کار درستیه که میخوایی منو بخوری یا نه؟ دیو سیا فکری کرد و گفت باشه باشه اون وقت هر دو برافت افتاد بله. کمک آقا و دیو سیاه رفتن و رفتن تا به گله گوسفندی رسیدن. کمک آقا از گوسفندی که در حال چریدن بود پرسید ای گوسفند آخل من در حق این دیو سیاه خوبی کردم و اون از صندچه که درش شب شده بود بیرون آوردم و جونشو نجات دادم ولی اون به جایی این خوبی میخواد منو بخوره گوسفند با بی گفت خب بخوره! کمک آقا گفت، این چه حرفیه که میزنی؟ من چون اونو نجات دادم، اون وقت اون به همین راحتی منو بخوره، این حق منه، اصلا این کار انصافه. گوسفند با همون بی اعترایی گفت، راستش ما گسفند هم خیلی، به آدم ایزاد خوبی میکنیم شیر میدیم بر راهای زیبا برشون میاریم پش بهشون میدیم اما همین که رو به پیری میریم ما رو سر میبرن گوشتمون رو سیخ میکشن به نظر من دیو سیا کار درست نمیکنه که میخواد تو رو بخوره کمک آها با شنیدن حرفای گسفن ناراحت شد و دلش به حالون سوخت و گفت ناراحت نباش همه جا خوب و بد پیدا میشه دیو سیا خندیکونن گفت آ دیدی حق با منه ها. ها. پس آماده شو که میخوام تو رو بخورم یه لغمت کنم کمک آقا دید که تا مرگ فاصله ای نداره بنابراین به پای دیو سی افتاد و گفت من که نمیتونم از دست تو فرار کنم ناقل مهلت بده تا نظر یه نفر دیگر رو در این مورد بپرسی بومد من آمادم که منو بیچونه چرا نوشه جم دیو سیاه این بار هم قبول کرد و اونا باز برافت این بار هم دیو سیاه و کمک آقای افسانه ما رفتن و رفتن تا به صحرای خشک و سوزانی رسیدن که شطور پیری در اونجا لمیده بود. کمک آقا جلو رفت و به شطور گفت ای شطور پیر دانا من این دیو سیاه رو از خطر مرد نجات دادم ولی اون در عوض این خوبی میخواد منو بخوره به نظر تو که شطور دانا و با درایتی هستی این کار درسته؟ شطور پیر سرش رو با ناراحتی تکون داد و گفت راستش من سالها برای صاحبم کار کردم بارهای سنگین رو این طرف و اون طرف بردم اما حالا که پیر شدم اون منو توی این صحرای خشک و سوزان رها کرده و رفته آه آه اصلا اون تمام خوبیایی رو که من در حقش انجام دادم فراموش کرده پس به نظر من که به قول خودت شطور دانا و با درایتی هستم، این دیوه سیا حق داره تو رو بخوره. کمک آقا، با شنیدن سرگذشت شطور پیر دلش با حالون سوخت و با ناراحتی گفت. آی، کاش میتونستم برای تو کاری انجام بدم. ولی این رو بدون که همه جور آدمی زاد پیدا میشه. پس تو نباید همه رو یک جور بدونی. همه ی آدم ها که بد نیستن. دیوه سیاه خنده ای کرده گفت ह... <ق labeled> حالا دیگه چی میگی آدم میبینی که همه خوردن تو را حق من میدونه <syrup> بس آماده شو آماده شو که دیگه دارم دیگه دارم از گرستگی حلاج میشم کمک آقا بازم افتاد به التماس کردن که ك... ای دیو سیاه مهرمون من که در اختیار تو هم ولی مهلت بده فقط نظری یه نفر یه نفر دیگر رو هم بپرسیم اون وقت قول میدم بی چرا خودم بندازم توی دهن مبارکی دیف با ناراحتی گفت باشه اما این دفعه دیگه بار آخری که به حرفت بوش میدم چون چون دیگه طاقت گرسنگی رو ندارم وای چقدر گرستم فهمیده؟ و دوباره براه افتادن تا نظر یه نفر دیگر رو هم ببرسن کمک آقا و دیو سیاه رفتن و رفتن و رفتن تا به روباهی رسیدند. کمک آقا که از کرده خودش سخت پشیمون شده بود به شدت بارد اما کاری از دستش ساخته نبود و توی دست دیو سیاه اسیر بود اون با دیدن روباه تمام ماجرا رو برای اون تعریف کرد و آخر سر هم گفت تو که روباه باهوشی هستی بگو ببینم آیا درسته که این دیو سیاه منو به خاطر خوبی که در حقش کردم نا جوان مردونه بخوره؟ روباه با تعجب از دیو سیاه پرسید تو؟ تو واقعا توی یه صندوق چوبی جا گرفتی؟ دیو سیاه جواب داد البته که جا گرفتم روباه سری داد و گفت راستش؟ من نمیتونم این حرفو باور کنم آخه دیوی به این بزرگی چجوری ممکنه توی یه صندوق چوبی جا بگیره؟ نه نه نه حتما داری شوخی میکنین <تصفيق> بله حتما شوخی میکنین هرچه کمک آقا و دیو سیاه قسم خوردن که شوخی نمیکنن و راست میگن و دیو سیاه واقعا توی یه صندوق گرفتار بوده روبا باز حرف اونا رو باور نکرد و گفت بدبختانه من خیلی دیر باورم و چیزی رو که با چشمه خودم نبیدم نمیتونم باور کنم کمک آقا گفت برای ثابت کردن حرفمون باید چیکار کنیم؟ روباه گفت اگه راست میگین به من نشون بدین که این دیو سیاه چجوری توی صندوق رفته بود همین؟ کمک آقا گفت باشه باشه بیا همه با هم بریم همون جایی که من اون صندوق رو پیدا کردم و بعد همه به طرف صندوق رو پیدا کمک آقا دیو سیاه و روبا رفتن و رفتن و رفتن و رفتن تا به صندوق رسیدن کمک آقا صندوق رو نشون داده گفت این این همون صندوقیه که این دیو سیاه توش گرفتار شده بود روبا نگاهی به صندوق انداخت و گفت من که اصلا باورم نمیشه که این دوست عزیز ما دیو سیاه بتونه توی این صندوق جا بگیره <تصفيق> نه, نه نه نه نه نه نه نه قابل باور نیست آخه چه میشه این دیو سیا بره توی این صندوق کمک آقا در صندوق و باز کرد و به دیو سیاه گفت بهتره به این روباه دیر باور نشون بدی که راحتی توی این صندوق جا میگیری و از دیو خواست تا توی صندوق بره دیو سیاه هم بدون معطلی رفت توی صندوق بعد روبه روباه گفت دیده دیده اینجوری این تو جا گرفتم دیده <تصفيق> روباه گفت بله میبینم ولی در صندوق هم باز بود؟ کمک آقا گفت نه نه نه درش هم بسته بود روباه گفت دارید وقت تلف میکنید به من نشون بدین که در صندوق چجوری بسته بود اینجوری دیگه حرفتون رو باور میکنم کمک آقا در صندوق و بست و گفت کرد و به روباه گفت حالا باورت شد؟ در این موقع روباه با صدای بلند خندید و رو به کمک آقا کرد و گفت کمک آقا تازه متوجه شده بود روبات چه به کار گرفته بنابراین دو با داشت و دو پای دیگه رو کرد و پا به فراب افسانه کمک آقا و دیو سیاه رو از مردمان تور که من سهر برخ رو برخون نرف کردم برگرفت از کتاب نوت افسانه با گردآوری و بازنویسی ساله پاک آیا میتونیم زمان مشخصی رو برای پدید اومدن افسانه ها معین کنیم؟ در پاسخ باید بگیم که هرچند زمانهای متفاوت از سه هزار سال به بالا رو برای افسانه ها گفتن اما افسانهها ها مقید به تاریخ معینی نیستند و در واقع خلق افسانهها از روزگار زندگانی ابتدای بشر آغاز شده قدر این گنجینه ارزشمند شفاهی رو بدونیم و اونا رو پاس بداریم ازار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالحپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار اکبر میایین که کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدرو